شورج با ش جميعیتون الورود و... السلام ععلكمم ورحمت الله و براکتو اینجا خراسان است دا خراسان. بس خواصانددن گفر است شنوده های رادیو خلافت و بخش دری برنامه ما خوش حال توجه شما را جلب می داریمم بد داشته های امروزی.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 رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانان صبح بارئ الله مشبر صاليد وحمد زان الله هس هي معبودي بجز الله كيقت واستو شريكه نضار وجود نضار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 من از تنبالی و بدیهای پیری بتوانم ببرم. بار ایلاها. من از عذابید و زخو عذاب خبر بتوانم ببرم. رادیو صدای خلافات. رادیو صدای سانگار. نهاد ایفن. لحظات خبری سرای خلافت.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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگاری مسلمان و مومین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید به امید اینکه که روزهای ماه مبارک رمزانتان به خوبی سیپری گردد امروز جمعه 19 رمضان سال 1437 تجری قمری نخست از همه توجه شما را جلب میدارم با خیرین تحولات و پیش های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر صحید صحید فتحه شش پوسته امنیتی دشمن در ساحه کوت و کوشته شدنی تعداد زیادی از ساکر حلاکت یک سیاست مدار حکومت پاکستان در پشوار سمید سواری. سمید سواری. سمید سواری. تسلطی دولت اسلامی بر دو پاسگاهی دشمن در نزدیکی شهر اسریا. حلاکت 17 نیروی کردی در منبیج سلیل و پنج نیروی مخالف در شهر رای کشته شدند سالیلو صواری. سالیلو صواری. و سوالی و نیروی دولتی در درگیری های یک ماه در لیبیا کشته شدند سوار نشید خبرهای خود را از ویلایت خراسان شروع می نیروهای دولت اسلامی حوالی ساعت 2 نیم شب گذشته یک سلسله عملیات گسترده را بالای لای های اردوی مرتطد و های محلی در صحه کوت آغاز کردند نبرد مدت 7 ساعت ادامه پیدا کرد و در پی آن 6 پُسته های محلی و اردوی ملی به طور کامل فتح گردید سپس نبردها به سوی مناطق ها کشاند شد و در زمان اندکی صحه وسیعی به دست شیران خلافت افتید خبر میگوید که در این نبردها یازده تن از نیروهای دشمن کشته شدند که در میانشان سه قماندان مشهوری ملیشه ها بنامه های نبیر رحمان حضرتی و عمرجان نیز شاملند همچنان در این غزوه مبارک سه تان که دشمن تخریب و غنایم زیادی نیز به دست شیران خلافت افتیده است که از حساب بیرون میباشد جزیاتی بیشتر را از ابو مسلم خراسانی میشنویم شب گذشته تعداد قلیل مجاهدین خلافت اسلامی ولایت خراسان در ساحه کد عملیات را انجام دادند که تمام پسته هایی را که مرتدین افغانستان تایی چند قبل ساخته بودند بعد از چند ساعت عملیات دوباره شش پسته به دست شیران خلافت افتاد سعد امارتی یکتن از قماندانان و شیر خلافت اسلامی میگوید در این عملیات یازده تن از مرتدین روانه جهنم گردید و تعداد از این مرتدین زنده به دست مجاهدین اثیر شدند که من نمیدانم که تعدادشان به چند تن می رسد اما به برادران دیگر ما معلوم است و سه تانک این بی به طور کامل از بین رفته و شمار زیاد غنایم به دست مجاهدین افتاده این در حال است که قبل از رمضان همین حکومت مرتد بالای مجاهدین در ساحه کود حمله نموده بودند که تعداد از مردم عوام را به شهادت رسانده بودند. رسانه های کفری می گویند که دولت اسلامی مردم عوام را کشته اما شعران خلافت میگویند که تعداد کثیر از مردم عوام در ساحات ما به زندگی خود ادامه می دهند. مگر هیچ یک از این مردم از خلافت اسلامی شکایت ندارند اما سعد اماراتی می گوید که تعداد از این اقوام که خاطر منافع شخصی خود به حکومت مرتد افغانستان تسلیم شده بودند و در خانه هایشان برای حکومت مرتد پسه های محافظتی ساخته بودند و از طریق همین رسانه های کفری اعلان کرده بودند که ما با حکومت افغانستان شانه شانه در مقابل دولت اسلامی میجنگیم و دولت اسلامی را از ننگرهار بیرون میکنیم که این آرزو را به قبرستان خواهند برد و شیران خلافت اسلامی با تمام نظام مرتد اختار می دهد کسانی که در نظام دخیلند باید قبل از اینکه که کارد ما به گلویشان برسد از کفر خود دست بردار شوند و کسانی که در نظام دخیل نیستند با خود دردسر دسر پیدا نکنند و به سوی نظام طاغوت هیچ میل نکنند و در خانه های خود به مرتدین جا ندهند و به آنها اعلان حمایت هم نکنند در غیر آن حق شکایت را ندارند لحظات لحظات خبری خلافت. ادامه خبرها تازترین گزارش های رسیده از پاکستان می‌رساند که نیروهای های دولت اسلامی یک سیاست مدار در حکومت این کشور به نام نوابخان صافی را در منطقه وزیر باغروت واقع در پشاور به حلاکت رساندند نیروهای دولت اسلامی بر دو پاسگاه نظامی سوریه در ده کیلومتری شهر اسریا در شمال شرقی ولایت حمات تسلط یافتند. در چند روز گذشته نیروهای بشار با همکاری شبه نظامیان شیعه، نظامیان ایران، عراق و حزب پس از مدتی آمادگی ها حمله بزرگی را بر جاده اسریا رقه به هدف سیطره بر شهر آغاز کردند. با آغاز حمله نیروهای دشمن و حامیان آنها اندکی پیشروی بسای منطقه داشتند و نظام سوری و هدف جلوگیری از ورود محتربم‌های استشادی دست به قریزی سرک نیست پرداختند اما پس از آنکه با آغاز حملات کوبنده مجاهدین دولت اسلامی نقشه جنگ عوض شد و پیشروی مجاهدین دولت اسلامی سوی خطوط دشمن آغاز یافت خبرها از شام می‌رساند که گروهی جیش شام به حرکت احرار شام پیوسته است است که در این واخیر گروه های کوچک به سرعت در حال پیوستن به دو گروه بزرگ مخالف یعنی جبه نصرت و احرار شام استند کارشناسان به این باورند که اگر وضعیت به این گونه پیش رفت احتمال دارد در آینده نزدیک جنگ قدرت بین جبه نصرت و احرار شام رخ خواهد داد گزارشا از شهر منبیجاکیست که هفته تن از نیروهای کردی در اثر انفجاری ماینهای ما جا شده؟ در اطراف این شهر کوشته شدند این نیروها زمانی کشته شدن که می‌خواستند بسوی شهر پیشروی کنند اما به فضل الهی ماین‌های جاسازی شده تلفات بزرگی بر آنان وارد کرد و مجبور به عقب نشینی شدند بر اساس یک تحلیل اگر وضعیت جنگ در مینبیچ این گونه به بدون شک با ضرر نیروهای کردی و هم پیمانان آنان تمام خواهد شد زیرا نیروهای کردی در اطراف این شهر محدود هستند و روزانه دهها از آنان کشته می‌شوند لذا تبقی نظر کارشناسان جهادی ادامه جنگ در منبیج حملات تهاجمی کردهای ملحد را کاهش داده و سپس در برابر حملات احتمالی نیروهای دولت اسلامی ضعیف خواهند بود. بی اذن الله تعالی. خبرهای دستی حاکست که نیروهای دولت اسلامی یک پایگاه نظامی نیروهای نظام سوری را در نزدیکی شهر تدمور در جریان درگیری ها تصرف کردند. در همین حال در یک خبر دیگر آمده است که نیروهای دولت اسلامی یک حمله تهاجمی نیروهای دشمن را در جنوب شهر خونسان نمودند. خبر می‌افزاید که در آتشباری های متقابلی دولت اسلامی یک اراده تانک و یک توپانداز از بین رفته است. گزارش‌ها می‌گوید که های مخالف در شهر رای واقع در ولایت حلب ضربات سنگین را متقبل شدند. در تازه ترین موارد 10 تن از این نیروها در جریان درگیری‌ها در این شهر کشته شدند. در همین حال یک کماندای استشادی تجمع آنان را در داخل شهرک هدف قرار داد که منجر به کشته شدنی 25 تن دیگرشان گردید خبر میگوید که این عملیات سبب شد تا گروه های مخالف پا به فرار نهند گفته نیست که گروه های مخالف با حمایت حملات هوای آمریکا بر شهر رائی مدت دو ساعت تسلط یافته بودند شهرک رائی یک منطقه استراتژیک است که از طریق آن مهاجرین جدید وارد خاک دولت اسلامی می شوند لیزا گروه های مخالف با تصرف این شهرک قصد داشتند تا بر دولت اسلامی فشار بیشتری وارد کنند. یک منبع نظامی از لیبیا به خبرگزاری اما گفته است که در جریان یک مادرگیری ها در اطراف شهر سیرت حدود 450 تن از نیروه های حکومتی کشته شدند که در میانشان 6 فرماندی سرشناس نیز شاملند. منبع میفضایت که در این مدت تن از نیروهای های دولتی زخمی نیز شدند. این در حالی است که نیروهای دولتی یک که تلاش دارند تا با حمایت نظامی و لوجستیکی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی بر شهر سیرت لیبیا مسلط شوند منبع می‌افزاید که از سه شنبه گذشته تاکنون 70 تن از نیروهای فجر لیبی کشته و 200 دیگرشان جراحت برداشتند. این نیروها در اثر حملات دفاعی دولت اسلامی کشته و زخمی شدند در همین حال یک حمله استشادی نیز آنان را در بیرون از شهر هدف قرار داد در این مدت نیروهای دولت اسلامی همچنان موفق شدند تا صد ارواد واسطه نظامی دشمن را نیز از بین ببرند. گزارش‌های رسیده سومالیا حاکی است که یک که زرهداری نیروهای آفریقایی در اثر انفجار یک موین جاسوسی شده در منطقه هاوی ابدی در جنوب سومالیا از بین رفته است. در چند ماه اخیر عملیات های دولت اسلامی در سومالیا افزایش یافته است. لازم به ذکر است که دو گروه در سوموریا مصروف جنگ علیه حکومت این کشورند، یک گروهی از شباب که با القائده بستگی دارد و دیگری گروهی از مقاتلین از شباب بودند که از این گروه جدا شده با دولت اسلامی بیعت دادند. یک مرد وارد سینمای شعر فیرنهایم در جرمنی شده دست به تیراندازی پرداخته است. خبرها میگوید که در این تیراندازی نزدیک به پینجا فرد زخم برداشتند، گفتنیست که مرد مهاجم در تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است تا کنون حویتی حمله کننده شناسایی نشده و کسی این حمله را براحده نگرفته است گزارشا از ایران می که 19 سرباز ایرانی در حادثه واجگون شدن یک می لبس در شهر اسفهان کشته شدند خبر می که در این حادثه بیست اسکاری دیگر ایرانی نیست زخم برداشتند شنوندگان عزیز این بود داخیلین تحولات و های دولت اسلامی از توجهتان جهان سپاس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لحظات خبری خلافت <متصفح> در جستجوی حق, حق.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 اینها ها کسانه هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند. خواسته الله بود که ما کردیم گشتیم، با استازه هاش با جای مختلف هاش و دیدیم، شنیدیم و از همه شنیدیم و براخره دانستیم به توفیق الله تعالی ما به قطر سیدیم. این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید. جمعه شب ها از راژی خلافت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 بلغوه حضرة المولى الإمامة وغفاعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن و شنوندگان شنا وندقان وبرادران مؤمن راديو سوى خلافات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكبر ديار شمارا ببرنامي دار در جوي حق خوش آمديد امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید در برنامه امروز خود استاد حمزه خراسانی را با خود داریم می پرسیم از ایشان که چیگونه به حق را پیدا کردند و چطور شد که آمدن به خلافت اسلامی و از فعالیت های کاریشان می پرسیم که چقدر در نظام طاقتی فعالیت کردند. و آیا از او کارهای خود راضی بودن یا خیر و چطور شد که همه عیش و نشاط دنیا رها کرده و امروز در سنگرهای دا علیه همه کفار و مرتدین می جنگ و مبارزه میکنه و خاطر تدبیق دین الله جل جلاله خب استاد حمزه خراسانی میخوایم که سؤال اول متوجه شما بسازیم اگر بر ما در رابطه با تحصیلات و علوم معلومات بتین که چقدر خودتان تحصیل کردین؟ الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي اباد. جزاك الله بشار سوال خوبی برادر مطرح کردیم بنده قبل از اینکه به ولایت خراسان هجرت بکنم درجه تحصیلات عمومی ما بسات معصری در علوم اداره و علوم سیاسی بود. و گذشته از درجه لیسانس بنده و مدیریت عامه و منابی بشری استاد محترم اگر در رابطه با فعالیت های کاریتان تان بگین که زمان که شما ماستری در علوم سیاسی و بخش ادارات گرفته بدین باز چقدر فعالیت کردین شما در همون نظام؟ جزاک الله در مجموع مدد ده سال مدد نظام تاغوت افغانستان نفای وظیفه کردم که آخری وظیفه می قبل از اجرات مسئول عمومی منابی بشری در یک از پروژهای بانک جهانی ازو گذشته به حیث متخصص اصلاح اداری اما بسط افغانستان بمودت یک سالی فای وظیفه کردم ازو گذشته مشاور ارشد منابی انسانی و اصلاح اداری اما بودم به یک از پروژه های سفارت امریکا در یک از ادارات افغانستان و گذشته ازو به حیث مسئول منابع بشری و اصلاح اداره اما یا اداره انکشاف اداری اما بسط افغانستان در چوکات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فیوضی فهمیدم که در مجموع مدت ده سال تمام فعالیت‌های ما به نظام تواقید و کفری افغانستان بود خب اگر سلسله وار صحبت بکنیم وقت بسیار می‌گیره در مجموع امی وظایف عمده عمده که بسیار بسات اصلاح اداری افغانستان بوده اینو به شما ذکر کردم شما در کدام پوانتون و یا لیسا در جای شما تدریس هم کردن یا خیر؟ بله کاملا درست با تاری که برطان ذکر کردم که درجه تحصیل ما مستری بدوم دولوم سیاسی و اداره و قسم که همه در جیران امروز افغانستان تمام اداراتش بمی متخصصین اداره نیازمند است و در سطح افغانستان و کابل بسیار انستیتوتای مختلف تحصیلات عالی و انستیتوتای نیمه عالی موجود بود و راجسر وزارت تحصیلات عالی حکومت مرتد افوانستان بود که ما در چندین انستیتوتا بعد از فراغت کاری یعنی بعد از وقت رسمیات اداره با بحث استاس افای وظیفه میکردم و در بخش مدیریت آمه در بخش مدیرت منابع بشری و در بخش علوم سیاسی برای فارغین صنف دوازده و فارغین این استودوتا او جما برشان تدریس میکردم خوب استاد خودتان در رابطه با تحصیلاتتان و های کاریتان صحبت کردین اگر برای ما در رابطه به یه سخن بگید که باز چطور شما در جستجوی حق شدین چنان که از سخنهای شما معلوم شد که شما حمیر حکومت افغانستان و حکومت مرتد میدانین و مو بخش ادارت را که شما کار میکنین شما گفتین که این نظام تاغوتی بود و یعنی از اونم فعالیت هایتان ناراض بدین از چی فتره شما در جستجوی حق شدین جزاک الله سوال بسیار خوبی برادر محترم مطرح کردین از ایام نوجوانی عقیده بنده عقیده قران و سنت بود و تمام عمر به عقیده بودیم به فکر بودیم که در روز باشه قرآن و سنت در تمام دنیا حاکم شود و و ما دی صفوف به پیوندیم و زی طریق عزت از, از دیس راfte مومنین و مسلمانان را پس یاری بکنیم و دنی جیران با صفوف حق به و کار بکنیم با قانون الله دای که الله را از خود راضی بسازیم و حدود الله را بر سر سر دین حاکم بسازیم استاد شما گفتین که از ایام نو جوانی خودتان عقیده قرآن و سنت داشتین آیا والدین هم امی عقیده را داشتند خیشواندان تان هم امی اقیده خودتان داشتند اقیده قرآن سنت و یا خیر این حکمت الله سبحانه وتعالی بود ما زمان سنف دوی مکتب بود و ما شش سالام را داشتم که پدرم وفات کرد بعد از او ایام اقیده قرآن سنت در وجود ما بود و حدود داشتن تا حدود فامیل هم به رضایت داشتند تایی که اونا هم به اقیده بودند که الله یکی از شریک نداره و از خرافات و شرک و بدعت از ای همیش اینا رنج میبردن تا یک حدود الله قایم شد و امی خرافات شرک و بدعت که تمام دنیا را خصوص افغانستان را که کده ای از بین برن. ولی در مجموع فامیلا دور مثلا کاکاها ماماها یا به یقیده نبودن اینا همیش عقیده بوده که ما باید به عقیده پدران و نیاکان خود چند بزنیم و عقیده نیاکان و پدران ما صحیح است، یه قاید جدیدی رو که شما اختیار کردین، یه قاید غلط است، یه قاید باطل است، و یه قاید صحیح نیست، در حال که تارک مطالعه صورت گرفته و به همه هوایده است، قبل از شاهی امان خبیس، نظام، تمام نظام افغانستان و مردم عوام افغانستان عقید توحید داشتند، بعد از انگلیس ها و کفار به اقیده شدند تا که عقاید مردم عوام دنیا را ایستا ایستا ایستا خرافات و بدعتا تبدیل بکنه با به اصاس این مردم عوام بل خصوص اقارب دوستان زیکم به شرکی خرافاتی و اقیده کسیف شرکی را داشتند و به ای این همیش مخالفت میکدند، اصحار میکدند که شما عقیده جدید اختیار کردنی، عقیده عقیده صحیح نیست، پس بیاند به عقیده نیاکان ماچنگ بزنید، ولی از ما همیش اصحاری بود که بینا دعوت میدادیم که شما کدام عقیده که شما اختیار کردیم، یا عقیده عقیده درست نیست، عقیده درست عقیده قرآن و سنت است هر عمل روید که الله سبحانه وتعالی از طریق وحیه بالا رسول الله سلم عمل کرده و وحیه کرده و رو بعد ما انجام بتم زیادی ازافتر زیادتر ما باید انجام نتم بلخصوص بعضی خرافات و رسم رواج و سایر اعمال از فری و شرکی و خب اصد شما از اقوام و خیش خود بعضی شکایت را داشتید و که اونها عقیده باطل داشتن یعنی معلوم میشه که قبلا خانواده و اقوام خیشواندان شما اخیری قرآن و سنت نداشت و بعدا شما اخیری قرآن و سنت را پیدا کردیم خب باز چطور شد که به جهاد را پیدا کردیم؟ لله الحمد مطالعه که ما داشتیم تحقیق که ما انجام داده بودیم به عقیده بودیم که یکی از فرایز جهاد فی سبیل الله است قطال جهاد اللہ کفار مرتدین منافقین را افز کود تا حدود الله در سرزمین الله جاری شد و ما همیش به یقیده بودیم که با صفوف مختلف جهادی بپیستیم اما مشوره و روابط ما که با بعض علماء حق پرست و برادرای مجاهدین ما که در صفوف مختلف جهادی در و در سر, سر دنیا اینا بودن مشوره شان اینا بود که فعلا حدود الله با این نظام ها و با احزاب مختلف تدبیق نمیشن بدلیلی که احضاب شرکی، بدعتی و خرافاتی و نیت تمام بزرگی نیت چوکی و پول و پیسه و مقام جال جلال است بر مشوره میدادن که شما آل فکر شنا بکنین دعا بکنین، سبر بکنین، بلاخره الله سبحانه وتعالی حق ظاهر میکنه و شما به حق بپرسین خوب استاد شما گفتین که عقیده جهادی رو هم داشتین با وجودی که عقیده جهاد هم داشتین و اون نظام نظام تاغوتی بود با علماء و بزرگاه هم نشست برخاست داشتین از اونا سوال میکردین و در جستجوی حق بودین چطور باز مدت ده سال در نظام تاغوتی ایفای وظیفه نمو دید خوب که من ذکر کردم معقیده مایی بود که نظام نظام کفریز نظام تاغوتی است، نظام دستنشانده امریکای کافر است و حدود الله دیجاری نمیشه نام اسلام زیر کلمه لا اله الله محمد رسول الله اینه کفر خرافات شرکیاتو. شرکیات و بداتار عملی میکنند بلاخر ما به بود که ما باید صفوف و حق بکنیم. اما دور که مالا گذشته یاد کردند، با ولای روحانین و نو، حق پرست برادران مجاهد ما مشوره میکردند. منا بر ما از میکردن میکردند که نظامی یا احزاب کلارا تمام سر دنیا، بل خصوص داوطلبان فعالیت میکنند. نام جهادی است، با عقیدین عقیده کرمان سنت نیست، عقیدین نیت اینا تدبیق حدود الله بر سر زمین الله نیست. باید اساس شما مچ خدا بگیرن و منشور و ختم آشیا منحج. این نظام هایی احزابی بوده که مشکل نیست شما به نظام کار بکنین نظام ما از داخل نظام مریان خوری میکنیم بلاخره این نظام برحم میزنیم و از داخل نظام کار بکنین تا که شما دیدن که ما مسئول استخدام بودم برها به با برادرهای مجاهد مشوره میکردم که ما و چیل انجام بودم اونا عقض هار میکردن که تو مواقف بسیار خوبی داری و دا جامعه تو مواقف برادرهای و برادرهای دقیق قبل نقیدیشون خوب بوده اینا اظهار ای میکردن که شما اموج باشین وظیفه موقف شما میسر و وظیفه موقف خوب است از این طریق خودت میتونید داخل نظام کار بکنی و تا اینکه برادرایی که, که واقعا شادی و عملیات اسلامی را انجام میتون تو با اونا کار بکنی به اساس ما با اونا ظاهرا مجبوریم اما عملا و ذهنا و احکام بیس نوران بودیم همیش رنگ میبردیم که ما با نظام طاغوتی و کار میکنیم این نظام نظام طاغوتی و کفر است این نظام خلاف حدود الله است افراد که ما زیادترش استفاده میکنیم بر روابط است همیش پافشاری تاکیدشان است که افراد کفر و طاغوتی و عقیده مزخرف اینا استفاده بکنیم تا اینکه یکی ای از بود یا یکی از عباد یک از مفکوریزی اینا بوده که جنرال یا مساوات جندر یعنی زن و مرد با هم زن و مرد شما استفاده بکنید دا داره مختلطی اداره باشه تایی که حق زن تلف نشده را که حق زن در اسلام بیسار واضح و رو باید ما تحقیق بکنیم واضح تاریک ما ببینیم خب بایی اساس ما بیسار رنج می بردیم و بالاخره همیج بودیم با اساس مشوره و هدایات برادران مجاهد ما که در صفوف القایده بودن دو وقت خوب بود بالاخره اونا رو ملا سبحانتوالا هدایت کرد هم هدایت کرد که او صفوف بیرو براید. خوب استاد فعلا که آمدین و در سرزمین خراسان تحت نظام خلافت اسلامی زندگی به سر میبرین. عزیز زندگیتان راضی هستین؟ بله بله کاملا دقیق و ما به زندگی بسار راحت است و زندگی زندگی واقعا ازدبار است و عزت که برماله سبحانه وتعالی در سرزمین خلافت در سرزمین اللہ برما دادم عزیز زندگی خود لذت می‌بریم آره و میسار آرام و زندگی زند الله خیر استاد محترم ازی که باز هم یک بار آمدین و در استیدیوی ما وقت گرانبه هایتانو با ما دادین امید است که تمام دوستان و عزیزان صدای شما را شنیده باشه و تمام برادرها بدانند که تحت نظام های تاغوتی کار کردن کدام فایده نداره و از اون نظام خارج شده و بیاین به صفوف مجاهدین بپیواندن و در راه الله جهاد و مجاهده بکنند خب ما در دقائق اخیر برنامه قرار داریم با دوستان الله حافظی میکنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لن را هذا ولا ذاکا و ذاکا بر اینا دولة الحق <سؤال> هنکا یا بکر الحسینی فهکا مدت رادیو تو, اماما. مدت تو, اماما. مدت تو اماما. های صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشراتی رادیو صدای خلافت روی همین موچ به زبان پشتو می یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته